تو تا حالا به دریای خزر رفته ای؟ نه، هنوز به آنجا نرفتم آنجا با همه جای ایران فرق دارد جنگل های انبوه و طبیعت زیبا چه جالب؟ جنگل های انبوه؟ بله، اما هوای آنجا شرجی است کشاورزی در شمال ایران چگونه است؟ کشاورزان برنج، چای و پنبه می کارند. پس آنجا خیلی سرسبز است مردم آنجا چه شغلهای دیگری دارند؟ ماهیگیری دریای خزر جای خیلی خوبی برای ماهیگیری است ماهی سفید که خیلی خوشمزه بود به خاطر جنگل زیبا و هوای خوش مردم ایران زیاد به شمال سفر می کنند. در ساحل دریای خزر جایی هم برای شنا هست؟ بله، همه شهرهای ساحلی جایی برای شنا دارند بندرهای مهم دریای خزر کدامند؟ بندر انزلی و بندر نوشهر مهمترین بندرهای ایران در ساحل دریای خزر هستند.